شکست دلی راه رو برای قب فراهم میکنه و اگر قرب و لغا فراهم نشه توجه به وج نکنه توجه به خود میکنه و در این زدن و این مناجات امام سجاده اصل و که صبحات وجه چون بر اساس فعی نما الله غیر خدا را نمی بیند. ولی انسان طبحکار بر اساس دلباخدگی به محدوده ماده و طبیعت خود حقیقی را از یاد میبرد چی میبینه؟ شکم و شهوت و مقام و پول و دنیا و ریاست و بهبه و چهچه و گروه و دار و همیناس دیگه از سرگرمش کرده هر کدوم یک تاری شده ما رو چنان به خودش وابست کرده که سختی جانکندن اینه که یکی که اینا رو باز کنی یکی راحت از همه چی دل میکنه مولا احمد نراقی مرد بزرگیه دیگه. مرد بزرگ اسم الله احمد، پدرش هم الله مهدی. گفت کتاب معراج ساده‌اش از چاپ در اومد. یک درویشی تو جایی کتاب رو خوند و عجب آرفی عجب زاهدیه. بریم نراق ببینیمش. اومد نراغ و سراغ گرفت. خب مرجع تقلید زمان بود، عالم وقت بود، کسی بود که مثل شیخ انصاری با اون عظمت از دسپول را افتاد بیاد بره اطراق نراق رسید هشت سال مون یه آلمن میشه رها کرد میتونه استفاده کنه پدر و پسر دم شخصیتی هر کی میپرسید میشناس توی نراق پولمون رفته دیدی باغه خونش توی باغه باق بزرگی داره و یه خونه ای و کلاسی داره و و برو و بیا و کلاس که تمام چهر رپ جرو گفت مولا احمد تو معراج صادق نوشتی خب بله گو ولی با این زندگی که تطبیق نمیکنه تو همش از زهد گفتی از دل به خدا بستن گفتی از غیر خدا دل کندن گفتی خونه چیه باغ چیه این هم شاگرد و درس و بحث چیه ملا احمد و که بیچاره یک کمی اسم من گرفتاری فهم داره یک کمی چقدر درس کنه این مشکل فهم داره حالا میشه سب کنی عجل نکنین نهاری با هم بخوریم خستگی رو بریم باشه حالا ناهاری داد ای که دوست داریم هم بریم زیارت مثلا قومی جایی بریم حرکت کرد. دربیشه کشکول و تنش و هم رو برداشت ما احمدم اباب مامش رو برداشت و بم رافت داددن. بین راه رسیدن جای شام می‌خوردن و قرار شد بخوابن فردا ادامه بدن ما احمد تصروفی کرد. صبح دربیشه رفت کشکول توزیین رو برداره جام توی اون قاب و خونه توی اون کاربانسررا دو کیلومری رفتن این تصف رو اده کرد همون به شیرشونه کشکول توزیین منکو. گو دیشب اونجا خوابیدیم جا گذاشتم گفت بعد برگردم اون گفت چرا گفت کشکیل رو باید همراه باشه گفت ببینم گفت نمیشه این حتما باید همراه باشه گفت سفرم تموم شد تو از یک کشکل طبرزی نمیتونی دل بکنی من از اون کلاس و جلسه و همه دل کندم آقا جون ذو دل نبستن اس نه نداشتن مسئله این که انسان تو اَعم طبیعت هرگز ذحمت حاضر و غائب شنیده ای من در میان جمع و دلم جای دیگر است. اگه وظیفه است اونجوری زندگی کنه اونجوری زندگی کنه. اگر امروز وظیفه شده هر چی داری اگر وزیفه، فرض کنید آقا این جمعه انشالله به امام زمان ظهور کرده. به من و شما بگن فرض کنید به من و شما بگن هر چی داری بفروش بده به فقرا خودتون فرض کنید یک تشکل غذایی بردار بیفت تو خیابونه شده قدیم نزدیکی های حسینی حاجیان ها که بعضی هم تو رو گدایی کن. آقا آخه ما یه عمری گفتیم عجل علا ظهوره. حالا که تشبایدیم ما رو به گدایی فرستدیم که برو. گرفتار منی. گرفتار منی. بینی و بینک نیی و نازعونی. فرفع به فکر که من ولی اگر گفتی یکی درد و یکی درمان پسند یکی وصل و یکی هجران پسند. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم اون چرا جانان پسندند زیر چکمه شمره شوخیه زیر چکمه شمره همه نوشتن و شمر جالسون علا صدره و زهک الحسین و هوا یقول رسن به رضایه تسلیمنلغذاک لا معبودسباق زیر چکمه شمرم تو گودال قتلگاه میگه پسندم اون چرا جانان پسندد هرچی خدا گفته ولی انسان طبهکار بر اساس دلباختگی به محدوده ماده و طبیعت خود را از یاد میبرد زیرا جز